عالم را نشاید که سفاهت از آمی به حرم در که هر دو طرف رازیان دارد حیبت این کم شود و جهلان مستحکم چو با سفله گویی به لطف و خشی فزون گرددش کبر و گردن معصیت از هر که صادر شود ناپسندیده است و از علماء ناخوبتر که علم سلاح جنگ شیطان است و خداوند سلاح را چون به اسیری برند شرمساری بیش برد. عام نادان پریشان روزگار بهز دانشمند ناپرهیزگار کان به نابینایی از راه افتاد. بین دو چشمش بود و در چاهو افتاد